فصل چهارده از چهار هم پیمان برتری خفیف استفاده کنید. از آهسته رفتن نترسید. فقط از بی حرکتی استادن بترسید. زربلمسل چینی هرچه با برتری خفیف و نحوه عمل آن بیشتر آشنا شوید، حضور و تأثیراتش را در زندگیتان به شکل‌های متعدد و در پوششهای مختلف بیشتر میبینید. برتری خفیف نیروی قدرتمندی است که همچون امواج سینوسی دریا لبه‌های تیز یک صخره را صاف و سیغلی می‌کند همانطور که لاوتزو درباره فلسفه تاو تا گفته است تاو تا شبیه آب است به دهها هزار چیز حیات می‌بخشد برتری خفیف نیز درست مانند حضور همیشگی های آب در علم زیست همواره در همه جنبه‌های زندگی حاضر است برتری خفیف چهرههای بسیاری دارد و همهی آنها همراهان فوقالعاده ارزشمندی در مسیر دستیابی به آرزوهایتان هستند شما در مسیرتان به سوی تسلط یافتن بر منحنی موفقیت تنها نیستید شما هم پیمانان و همراهان قدرتمندی را در کنارتان دارید که وقتی آنها را در زندگیتان تشخیص دهید میتوانید همچون چهار اسب وحشی که به یک عرابه یک نفره بسته شدند قدرت آنها را در راه رسیدن به رویاهایتان مهار کنید آنها تکانش، تکمیل، بازتابش و تجلیل هستند استفاده از قدرت تکانش چه کسی در مسابقه برنده شد؟ لاکپشت یا خرگوش؟ همه ما جواب این سوال را میدانیم؟ با این حال هنوز هم در دنیای زندگی میکنیم که بیشتر افراد انتظار دارند همه چیز را فوری به دست آورند و اگر به نتایج مورد نظرشان هرچه سریعتر دست پیدا نکنند از تلاش کردن دست میکشند و تسلیم میشوند توقع سری پول دار شدن شدند به دنبال مسیر میان بر بودند سفارش دادن فقط با یک کلیک و همچنین آن شخصی که در مقابل دستگاه ماکروف ایستاده بود و زیر لب قررق میکرد کرد که یالا یالا. همه و همه نشان دهنده این موضوعند که ما به گونه ای شدیم که انتظار نتایج آنی و سریع را داشته باشیم. اما این انتظار سریع، سریع تر و سریعترین سر انجام شما را به پایین منهنی برتری خفیف و زندگی ناکام و غمناکی می کشد. اینکه من عنوان یکی از فصلهای قبل را آهستهتر بروید تا سریعتر برسید گذاشتم دلیل خاصی داشت. حکایت ازوب کاملا دقیق و درست بود. سریعتر همیشه بهینه نیست و اغلب اوقات باعث برنده شدن در مسابقه نمی پیترسنگه پیتر سنگ استاد دانشگاه MIT در کتاب بسیار خوبش به نام پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده این موضوع را به خوبی توضیح داده است. او میگوید تقریبا همه سیستم های طبیعی از اکوسیستم‌ها گرفته تا حیوانات و سازمان‌ها، فی نفس نرخ رشد بهینه ای دارند. نرخ رشد بهینه بسیار کمتر از سریع ترین نرخ رشد امکانپذیر برای آنهاست. وقتی که رشدشان بیش از حد باشد همانطور که در سرطان اتفاق میافتد خود سیستم با کاستن از سرعتش به دنبال تنظیم و تصحیح خواهد بود که احتمالاً به این دلیل است که سرعت زیاد بقای سازمان را در معرض خطر قرار میدهد. مسلما انوا و اقسام چیزهایی را دیده اید که برای سود و منفعت خودشان رشدی بسیار سریع داشتند. مثلا کسب و کاری که به سرعت گسترش یافت و سپس موجب ویرانی خودش شد یا یک ستاره سینما یا سیاستمدار که تبدیل به یک ستاره دنبالدار شد اما در نهایت سقوط کرد و نابود شد یا حباب قیمتی مسکن در اواسط دهه اول قرن 21 و جایی که در اواخر همان دهه به آنجا ختم شد بسیار سریع رفتن یا رشد بسیار سریع اغلب بقای سیستم یا شخص را در معرض خطر قرار میدهد. بخشی از یادگیری برتری خفیف کشف نرخ رشد بهینه ذاتی خودتان است این نرخ در صورتی به بهترین نحو به شما خدمت میرساند که به صورت یک رویکرد تدریجی و مرحله به, مرحله به مرحله بهبود دائمی و بی پایان باشد طوری که یک شالوده محکم بسازد و پیشرفتهایتان را یکی پس از دیگری بر روی آن بنا کند برتری خفیف نرخ رشد بهینه شماست یعنی همان اقدامات ساده و منظمی که در طول زمان مرکب میشوند این گونه است که لاک پشت برنده می شود و به همین شیوه است که شما نیز می توانید برنده باشید. حالا اجازه دهید از شما بپرسم نکته واقعی داستان لاک پشت و خرگوش چیست؟ آن که آهسته و پیوسته می رود در مسابقه برنده می شود. درست است؟ اما توجه شما را به یک موضوع دیگر جلب می کنم. نکته عبارت فوق این نیست که در آهسته رفتن فضیلت و مزیت خاصی وجود دارد. هیچ چیز ذاتن خوبی در آهستگی و آهسته رفتن وجود ندارد و ممکن است خیلی آهسته رفتن درست به همان اندازه خیلی سریع رفتن به شکست شما منتهی شود. واجه کلیدی در این پند اخلاقی ازوب کلمه آهسته نیست. واجه کلیدی کلمه پیوسته است. آنکه پیوسته می رود در مسابقه برنده می شود. حقیقت آن داستان همین است، زیرا پیوسته رفتن چیزی است که از قدرت برتری خفیف بهره برداری می کند. در حقیقت، داستان لاکپشت و خرگوش درباره قدرت فوق‌العاده‌ای تکانش است. قانون دوم نیوتن گوید جسمی که ساکن است تمایل دارد در حالت سکون باقی بماند و جسمی که در حال حرکت است تمایل دارد به حرکتش ادامه دهد. به همین دلیل است که فعال بودن شما بسیار اهمیت دارد. هنگامی که در حرکت هستید بسیار آسان است که همین طور به حرکتتان ادامه دهید وقتی که توقف می کنید دشوار است که از حالت توقف به حالت حرکت تغییر وضعیت دهید. من به مردم آموزش می دهم که چگونه با انجام دادن اقدامات روزانه بسیار ساده و آسان کسب و کارهای موفق بسازند. مانند همان ده تعهد اصلی که تیم ما بعد از ادغامی که در فصل چهارم در بارش صحبت کردم از آنها استفاده کرد. پی بردم که اگر به مدت یک هفته هر روز یکی از آن اقدامات را انجام دهیم بسیار موثرتر از این خواهد بود که هفت یا ده یا حتی یک دوجین از آن کارها را به یک باره انجام دهیم و سپس باقی هفته را استراحت کنیم و بیکار باشیم. افرادی که هفته به هفته به شیوه اول عمل می کنند کسب کار معفقی ایجاد می کنند اما افرادی که به شیوه دوم عمل می کنند از پس این کار بر نمی آیند. حتی اگر در عمل نسبت به گروه اول حجم بسیار بیشتری از آن کارها را انجام داده باشند. چرا؟ زیرا تکانشی شکل نمی گیرد. بعد از شش روز استراحت آنها مجبورند که همه چیز را از نو شروع کنند و دوباره خودشان را آماده و مشتاق برگشتن به کار کنند. آغاز کردن یک فعالیت جدید انرژی و قدرت نسبتا زیادی می طلبد. اما انجام دادن کاری که قبلاً آن را شروع کرده اید انرژی بسیار بسیار کمتری می خواهد دلیل دیگری وجود دارد که چرا انجام دادن یک فعالیت به صورت روزانه و به مدت یک هفته بسیار بهتر از این است که هفته یک بار آن فعالیت را هفت بار در یک روز انجام دهیم دلیلش این است که انجام دادن منظم روزانه آن فعالیت شروع به تغییر دادن شما می کند. این نظم به بخشی از رویه های شما تبدیل می شود و هنگامی که این اتفاق رخ داد به بخشی از شما تبدیل خواهد شد. این موضوع با یک تلاش بسیار زیادی یک بار اتفاق نمی افتد. فرض کنید که در هنگام صبح یک پیاده روی تند بیست ای انجام می دهید و سپس عصر همان روز 20 دقیقه را به تمرین کردن با دستگاه بدنسازی خانگی تان اختصاص می دهید. تصور کنید که به مدت یک هفته هر روز این کار را انجام دهید. در انتهای هفته چه احساسی خواهید داشت؟ حالا به جای آن اگر همان روز اول صد و چهل دقیقه یعنی بیش از دو ساعت پیاده روی کنید و عصر همان روز نیز صد و چهل دقیقه با دستگاه بدنسازی خانگیتان ورزش کنید و سپس در شش روز آینده هیچ کاری انجام ندهید، چه اتفاقی می افتد؟ آن که می رود در مسابقه برنده می شود؟ همچنین وقتی که در حرکت هستید، ایجاد تغییرات مثبت در مسیرتان بسیار تر است. این موضوع شبیه هدایت کردن اتومبیل است. وقتی که اتومبیل ساکن است، چرخاندن چرخها کار نسبتا سختی است. اما وقتی که اتومبیل حتی با سرعت فقط 20 یا 30 کیلومتر در ساعت در حرکت است، چرخاندن چرخها بسیار آسان است. در واقع فقط به این دلیل آسان است که شما در حرکت هستید. برتری خفیف یک جریان است که با سرعت خاص خودش حرکت می کند و به طور خودکار با سرعت رشد بهینه پیش می رود بخشی از درک فلسفه برتری خفیف این است که یاد بگیریم با جریان آن حرکت کنیم هر چقدر هم که ناشکیبا باشید تأثیری در برتری خفیف ندارد برتری خفیف چه با رضایت و موافقت شما و چه بدون آن همیشه با سرعت بهینه خودش حرکت می کند خواه از حرکت آن آگاه باشید خواه نباشید. دان میلمن قهرمان جهانی ژیمناستیک در کتاب فوقالعادهش به نام راه جنگجوی سلطو، به بهترین شکل به این موضوع اشاره کرده است. او میگوید همه چیز را رها کن و با جریان همراه شو. برای اینکه از جریان برتری خفیف استفاده بهتر و بیشتری ببرید، باید سرعت رشدتان را با سرعت طبیعی برتری خفیف تطبیق دهید. شما می توانید این کار را به طور طبیعی و با بکار بستن پیوسته استراتژی برتری خفیف انجام دهید یک جسم در حال حرکت به حرکتش ادامه می دهد فعال باقی ماندن بسیار آسان است ساکن و بی تحرک بودن نیز آسان است و اگر توقف کنید، این موضوع همین امروز شما را از بین نمی برد، اما همین اشتباه ساده در تصمیم گیری در طول زمان مرکب می شود و امکان رسیدن به هر هدفی را که به دنبالش هستید، از بین می برد. اش این موضوع را به سادگی توضیح داده است. چیزی را انتخاب کنید که دائما برایش تلاش کنید. استفاده از قدرت تکمیل یک راه دیگر برای گردآوری قدرت تکانش و مهار کردن آن به نفع خودتان این است که فعالیتی به نام تکمیل کردن را به طور مرتب انجام دهید. آیا در زندگیتان کارهایی هست که ناقص و ناتمام باشند؟ آیا صورت حسابهای پرداخت نشده یا پروژه ها و طرحهای ناتمام دارید؟ آیا کتاب یا ابزاری را امانت گرفته اید که هنوز باز نگردانده باشید؟ آیا در زندگیتان کسی هست که لازم باشد به او بگویید که دوستش دارید یا از او ممنون و سپاس گذارید یا به دلیل رفتارتان متاسف هستید؟ آیا هیچ گونه کار ناتمامی ندارید؟ هر گونه قولی که به آن عمل نکرده باشید مانند بیرون رفتن با نامزدتان یا بردن فرزندانتان به یک جای خاص آیا توافق و تعهدی هست که به آن عمل نکرده باشید؟ همه کارهای ناتمام شما در زندگی یا شغلتان نیروی مکنده بر شما وارد می‌کنند و همانند خوناشامی که خون شما را می‌مکد انرژی حاصل از موفقیت و پیشرفت را از شما می‌گیرد هر گونه قول تعهد یا توافق ناتمام و عمل نکرده قدرت شما را تضعیف می‌کند چرا که مانع اتکانش شما می‌شود و از بروز توانایی‌های شما برای جلو رفتن پیشرفت کردن یا بهتر شدن ممانعت می‌کند کارهای ناتمام شما را به گذشته فرا می تا آنها را رفع و رجوع کنید. حقیقت تعسفبار و بسیار ویرانگر ناتماماندن کارها این است که گذشته را زنده نگه می دارند. از فصلهای قبل به یاد دارید که افرادی که روی منهنی موفقیتند با نیروی آینده کشیده می شوند در حالی که افرادی که روی منهنی شکستند نیروی گذشته آنها را می کشد. یک راه مسلم که موجب می شود زندانی گذشتتان باشید، این است که کارهایتان را ناتمام رها کنید. آیا انجام دادن این کار آسان است؟ بله، و انجام ندادنش نیست. صبر کنید، بیایید چند لحظه درباره این موضوع تعمل کنیم. میدانید در واقع به اتمام رساندن آن کارهای ناتمام همیشه کار آسانی نیست، خصوصا وقتی که یک خروار از آن کارهای ناتمام دارید که باید رفع و رجوع شوند آن کارهای ناتمام می توانند کاملا طاقت فرسا و درهم شکننده باشند خصوصاً وقتی پی ببرید چیزی که در وهله اول شما را از به اتمام رساندن آنها باز داشته است مانند ترس از مواجه شدن با آنها یا نگرانی از اینکه ممکن است کارهای سخت یا ناخوشایند باشند نیز با نیروی برتری خفیف مرکب شده است این هم کار برتری خفیف است فقط در اینجا علیه شما عمل کرده است حقیقت این است که حتی آن کارهای ناتمامی که انجام دادنشان سخت به نظر می وقتی که اولین بار پیش آمدند بسیار آسانتر از چیزی بودند که الان هستند نزدیک شدن به آن توده کارهای ناتمام و به اتمام رساندن آنها با رویکرد برتری خفیف نه تنها بهترین راه رسیدگی کردند به آنهاست بلکه تنها راهی است که می توانید آنها را به اتمام برسانید درست مانند زمانی که میخواستید راه رفتن را یاد بگیرید تلاش کنید تا آن کارهای ناتمام زندگیتان را نیز به پایان برسانید. در هر لحظه قدم های کوچک بردارید و اجازه دهید که نیروی برتری خفیف به نفع شما عمل کند و کمک کند تا هر آنچه نیاز به کامل شدن و به پایان رسیدن دارد به اتمام برسانید. پیش از این با والری توماس آشنا شدید همان شخصی که دخترش توانست با بکار بستن نیروی برتری خفیف و صرف زمانی برای تمرین کردن بر روی دوچرخه ثابت بر اضافه وزن ناخواسته غلبه کند. این چیزی است که والری درباره قدرت تکمیل کردن گفت. من در خانه زندگی می کردم که زیرزمین بسیار بزرگی داشت. در آن زیرزمین انواع و اقسام وسایل مختلف از حدود 17 سال پیش انبار شده بود و در میان آنها فقط یک راه بسیار باریک برای رفتن به اتاق پشتی و استفاده از ماشین لباسشویی وجود داشت. سرانجام زمان نقل مکان اجباری از آن خانه فرا رسید. با خودم می گفتم که هرگز نیازی به جمع کردن آن وسایل گرد و غبار گرفته نخواهم داشت. هر وقت به آن فکر می کردم بدنم مور مور شد به هر حال بعد از یادگیری مفهوم برتری خفیف تصمیم گرفتم هر بار که برای شستن لباس ها یا برداشتن مواد غذایی به زیر زمین میروم فقط یک کیسه یا یک جعبه را جابجا جا کنم خیلی زود پرتوهای نور از لابلای وسایل نمایان شد قبل از اینکه زمان زیادی بگذرد زیر زمین کاملا پاکسازی شده بود و شرایط برای یک نقل مکان موفق مهیا بود در هر زمان فقط یکی از کارهای ناتمامتان را انجام دهید. حتی اگر به نظر می رسد که آن کار بسیار سخت و شبیه بالا رفتن از کوهی بسیار بلند است، در اطراف دامنش جستجو کنید تا هنگامی که اولین جاپارا را پیدا کنید و بتوانید گام بردارید. بزرگترین قضاها نیز لقمه لقمه خورده می‌شوند. بنابراین کاری را پیدا کنید که می‌توانید انجامش دهید و سپس آن را انجام دهید. هر روز پانزده دقیقه از وقتتان را به تکمیل کردن کاری یا چیزی اختصاص دهید. هرگاه که کاری را به اتمام میرسانید، چمدانتان کمی سبکتر و گامهایتان کمی بلندتر می شود. آیا انجام ندادنش آسان است؟ کاملا. و آیا اگر همین امروز این کار را انجام ندهید، شما را نابود می کند؟ غیر را خودتان میدانید.